حکایت شبی یاد دارم که یاری عزیز از در درآمد چنان بیخود از جای برخواستم که چراغم به آستین کشته شد سرا طیف و من یجلو به طلعت دوجا. شگفت آمد از بختم که این دولت از کجا بنشست و عطا باغاز کرد که مرا در حال بدیدی چراغ بکشیدی به چه معنی گفتم به دو معنی یکی آنکه گمان بردم که آفتاب برآمد و دیگر آن که این بیتم به خاطر بود چون گرانی به پیش شم آید خیزشان در میان جمع بکش بر شکرخنده است شیرین لب آستینش بگیر و شام بکش.